بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد بسفنج من درس درس سوري يوسف عليه الصلاة والسلام ويشاستشور فالمدير الله قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال هل آمنكم عليه كما أمنتكم شمات مینام بکنم همونطور قبلا هم بهتون اطمینان کردم یه بار بهتون اطمینان کردم خیانت کردید به یوسف تعویلتون دادم اون براش نگردوندید الان میخوای رو دستتون بدم دیگه برش نگر براش نگردونید می قاعده کلی بهمون میده لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين از یک سوراخ مار نباید دوبار دو بار گزیده بشه یک بار یک شخص امتحان کردی پولی بهش قرض دادی بعد نگردم بار دوم دیگه بهش قرض نده حواس جمع باشه یه باری کسی به دروغ گفت بار دوم تو اینان نگو الا اینکه حالا میخواد تعهدی بده میخواد کسی زامنش باشه حالا مسائل فرق میکنه ولی خب اعتماد را باید پیراوموش تحقیق بکنیم یعنی اعتماد اون شخص همینطوری ساده نباشیم هر کسی اومد بشه اعتماد بکنیم حالا خصوصا در امور دنیا خصوصا در امور دنیا اینجا هم بحث دنیاست برادری میخواد تحویل برادراش بده و اونم برادری که قبلا یه بار سابقه ای داشتن، سوی سابقه داشتن. الاکما امنتکم علی اخیه من قبل. نگفت اینجا برادرتون گفت علی اخیه یعنی یوسف برادرش. همونطور که برادرش دستتون دادم الانم اینم دستتو چرا نگفت اخوکم برادرتون چون اونها حسادت داشتن نسبت به یوسف و رازی به قتلش بودن میخواستن حتی یوسف را به قتل حد. خب یعقوب هم دستشون ناراحت بود وقتی که اومدن گفتن که گرگ برادرمون رو خورده گفت الله المستعان از الله کمک و یاری میتلبن. این خب مشخص بود که اینا توته کردن اینا دارن دروغ میگن اینجا هست که این تعبیرات دلالت داره برای خودش این تعبیرها از سخنان الهی یعنی یک حالت نکوهش داره یک حالت سرزنش داره یک حالت نقد داره بر برادران یوسف تعامل شما با اینم فرق نمی کنه اینم برادر ناتنی تونه اونجا خیانت کردید اینجا خیانت می کنید و من گفتم چندین بار این قضیه رو تکرار کردم این مسئله پیش میاد خصوصا بین برادرانی که در پدر با هم مشترکن مادر نه مادر اگه 10 تا شوهر بگیره میونه بچه‌هاش با هم مادر دیگه زیر پرچم خودش زیر بال خودش اونا رو بزرگ کرده فرقی نمی کنه مال کدوم شوهر باشه برادرا با هم اونسی بیشتری دارن تاثیر مادر تاثیر مهر در ایجاد ارتباط ایجاد همبستگی مادر خیلی موثره مادر میتونه جمع کنه من همیشه مننت و فضل ارائه‌ای رو بر خودم شکر میگم یعنی نم الحمدلله مادر خودم اگر نبود ما برادر و خواهر دور هم جمع نمی شدیم. سایه مادر خیلی مهمه و تربیت مادر خیلی مهمه خاطر همین ما در درس های سوره یوسف داشتیم حتی عزیز مصر این قضیه رو میدونست یوسف رو که تعبیر زلیخا میده میگه اکرمی مثواه اکرامش کن با خوبی و مهربانی تانجایی تا که میتونی همیت اهمیت و عنایت بش بده تا خوب تربیت بشه شاید جای بچه‌ای که ما نداریم بگیره خیلی مهمه پس مادر نقشش در تربیت فرزند و در انسجام خانواده‌گی مادری که جمع میکنه مادری که متفرق میکنه. مادر نخشه. به بسزایی داره خسن در کانون خانواده. خانواده باید جنب بشن. نباد باید برادرا با همدیگه کینه داشته باشن، بغض داشته باشن. مادر اگر تبعیض قائل بشه بدتر از این قضیه که شما در قضیه یوسف دارید بدتر از این میشه. وقتی که مادر یک بچه رو بیشتر دوست داشته باشه، تا بقیه بچه ها مال پدر خیلی محسوس نیست چون پدر مأمونه تو خونه نیست، ولی مال مادر خیلی پررنگه. مادر رو باید خیلی مؤدب باشن. خب الان سر دراهی عقوب علیه السلام گیر کرده که برادر یوسف رو حالا بنیامین یا هرچی نام داشت چنانچن در تهرات مند اسمش بنیامین من بوده اگر تحویل برادرش نده پس نیک ای ندارن قضای ندارن قحتی هم هست چه کار باید بکنه سر دراهی گیر کرده تصمیم میگیره که بفرسه برادر یوسف رو باشون میگه فالله خیرن حافظ الله الله هم بهترین حفاظت کننده است و هو ارحم الله هم من واقعا خوشبینی همچنان ما در این قصه داریم از همون ابتدا که یوسف رو بردند تا اینجا که الان میخوام برادرش رو ببرن در قضیه یوسف خواب دیده بود یوسف دلش آرام بود دلش گره بود که حتما الله یک سرنوشت نیکی را برای یوسف ورق زده درست که این ها درو گفتن درست که این ها برادرشون رو برنگردن ولی یوسف برخواهد گشت همچنان میدانه که یوسف در همین دوربر فلسطین داره زندگی میکنه یک اطمینان خاطری داشت بلاخره پیغمبره بچشم خواب دیده و از خواب بچهشم میدونه یک مجدهایی هم داده شده بود خاطر همین انتظار یوسف هنوز خب الان ولی برادره یوسف هم میخوان خب خبالا این دیگه کجا قراره که ببرنش و با چطور باید این بر بگرده اینا همه سرست داره برای شخص فرد حسن بچه ای که بهش تعلق خاطر داره اون ده تا بچه ها رو کنار زد فقط بعد از اینکه یوسف رو بردن برنگردونه دیگه این بچه شد سایه پدرش همکاره پدرش شد خب والا اینم دیگه میخوان از پدرش جدا کنه. خب اینجا هم گفتم خاطر قهطی خوشالی راضی میشه که برادر یوسف رو بده همراهشون ولی حسن زن به الله رو داره که الله ازش حفاظت میکنه و الله هم خیرخواه اونها والله الرحم الرحيمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم رفته بودن پیش یوسف یوسف گفت اگر بار دیگه خواستید برگردید برای آذوقه برادرتون باید بیارید بیارید وگرنه خبری از آذوقه نیست خبری از جو گندم نیست فلا کلیلک اونجا بهشون گفته بود خب به اندازه خودشون بهشون داد آذوقه اومدن باشوتورانشون در اون آزوقه ها را باز کردن و لما فتح و متاع هم هم ردت الهیم دیدن که اون کالایی که رفته بودن برده بودن برای فروش حالا پول بوده حالا فلزات بوده هر چیزی که همراهشون بوده برای مبادله یا معاوزه برده بودن که اونجا بدن و بگیرن یک آزوقه بگیرن باید پولی داشته باشن و پول اونجا جنس بوده نقدینگه هم بوده خب دیدن که اون نقدینگی ها اون پول ها یا اون کالا هایی که برده بودن برای فروش وسط باراشون وسط وسایلشون ازو قوارش گفت قالو یا ابانا دیگه چی میخوایم این پدر ما نبغی نه که نفیه اینجا استفهام این تعجبه ما نبغی نیست، که نمیخوام پس. یعنی برادر یوسف را نمیخوام ببریم نه اصلا اینجا جمله جور در نمیاد چون قطعه قطع این جملات با هم دیگه با ما بعدش رب داره ما نبغی دیگه چی بهتر از این یوسف علیه السلام از قست کالو رو گذاشته بود تو اسالهاشو تو باراشو قالو یا ابانه ما نبغی هذی بضاعتنا ردتی لینا نباکو با پدر کل اجناسی که برده بودیم برای فروش، برای معاوزه الان بهمون برگردوند شده این هم نگاه خب دیدن الان با این کاله ها دوباره میتونیم برای خودمون آزوخه بیاریم و نمیرو اهلنا و نحفظ و اخانه و نزداد و کیل به ربط جمله به و نبغی و اهلنا اهل نمیر رفتن برای آزوخه بردنه میریم آزوخه میاریم هم حفظ میکنیم یک بار شطور هم اضافه می گیریم و نزداد و کیل بعیر به جای ده شطور 11 شطور می گیریم سهم برادر یوسف هم می گیریم نزداد و کیل بعیر ذلک کیل يسیر بهتر بهتره این که ما یک کل اضافه بر یعنی یک بار شطور اضافه بر بردونیم با خودمون قال ان ارسله معکم حتى تؤتون موثقا من الله این بار دیگه بهتون اطمینان نمیکنم اعتماد نمیکنم این بار بهتون نمیدم همیتوری باید اینجا یک وثیقه بیارید اونم وسیقتون چی باشه وثیقهشون باید اینجا باید قسمهای مغلظی باشه بخاطر همین گفت تو تو من الله قسم قسمهای مؤکدی به الله شما باید اینجا بیارید وسیقتون باشه قسمهای مؤکدی غلیظی شما باید بخورید تا من بهتون اطمینان بکنم خب اینجا بحث قسمه در قالب تعهد گرفتن میشه چک گرفت میشه رهن گرفت سند و میشه هم قسم گرفت چنانچه در این قصه داریم اون کسی که ما بهش اعتماد نداریم نمیشناسیم یا سوپیشینه داره کارمون باید محکم بکنیم شرع دین الله وسیقه باید بگیری یک چیزی ضمانتی باید داشته باشی لله همینطوره روها نکنید خوسان کسی که سوی پشینه داره محل اعتماد نیست از توکل نه اعتماد بر الله اینه که ما اسباب وسایل ابزاری که در اختیار داریم از اون استفاده بکنیم این توكله اگر نگیریم که توكله صحابی میاد نظر رسول الله صلی الله علیه من شوترم را ها کردم خدا بخواد نگاش می داره قال اعقلها ثم توكل اعقلها بالبند بعد توکل کن اسبابه انسان باید اسباب را بگیره حتی تؤتني موثقا من الله لا به برید قسم های غلظهتون که دوباره برادر یوسف را برگردونید الا ان يحاط بكم استثناء میگم الا ان يحاط بکن مگر اینکه یک امری صارفی بیاد سبب بشه که شما معذور باشید نتونید برادر یوسف رو بر بگردونید. یک حادثه پیش بیاد یک مشکل پیش بیاد براشون جا هم میذاره الا معمولا تو معاملات تو وسایق که نوشته میشه معمولا استثناء ها نوشته نمیشه مثلا منم با یک نفر میخوام شریک بشم من باید برای 5 سال دیگه 10 سال دیگه باید برنامه بریزم اگر مشکلی پیش اومد اگر نمیدونم این مال غرق شد این مال نیومد چند درصد به من باشه چند درصد خصوصا تو مزاربه که پول از یه نفره کار از یه نفر دیگره اگر سهلنگاری انگاری کرد مسئول کیه استثناها باید در وثائق قید بشه استثناها باید قید بشه باید جوان به امور آدم بسنجه از مدت باید فکر بکنه اگر یکی از طرف مرد چی میشه باید بنویسی قید بکنی این به برسهش میره یا ایمال پول از کسی دیگه قرض گرفته باید مشخص بشه نه این که همینطوری کیلوی بیار 100 میلیون بده من کار میکنم و پنجادرصد بد میگردونم این نشد این تجارت نیست این معامله نیست باید در وسیقه همه چیز نوشته بشه از مرگ، از سفر، از عوز، از مریضی باید اینا قید بشه که تبییم بشه یعنی تمامی اون جوانبه که مثلا احتمال داره که رخ بده اون احتمالات نوشته بشه در صورت این احتمالات آه سرف رفت بالا من این پول الان به دادم خبصا این مسئله رو مردم دقت نمی کنن. پول به کسی قرض میدم 100 میلیون تو 100 میلیون دادی بعد این طرف یک سال دیگه بر بگردون این 100 میلیون 10 میلیون ارزش شاید نداشته باشه بعد بیایید تقاضا بکنی نه اون موقع این یک ماشین فلان ماشین میشد الان پراید هم بهت نمیدن این که نمیشه تو 100 میلیون دادی 100 میلیون پس میگیری الا تو یک قضیه استثنا بکنی تو از همون اول که قرض میدی بگو این من پول قرض دادم به قیمت دلاره این صد میلیون که دارم میدم این 10000 دلاره به این قیمت دارم بهت میدم تو به قیمت روزش الان دارم تحویل نمیدم دلار برام برمیگردونی به قیمت دلارش یا به قیمت تلاش اینقدر طلا دارم بهت میدم درسته این پوله ولی این پول به ازای نقدینگیه من دارم بهت میدم به من طلا برمیگرد من کاری ندارم آقا این پول ارزشش رفت بالا اومد پایین فردا هم پول ارزشش پایین اومد اون دیگه اونم طرف مقابلم مسئول نیست یک نرخی تعیین بکنید بین خودتون اینم قرض حسن است احتمال داره ضرر بکنید احتمال داره سود بکنید پس اندازی بشه براتون این معامله با خداست بدونیدم که در قرض دادن هم خیلی زیادی الله گذاشته ثواب داره فکر نکنید همینطوری قرض ثواب نداره نه مثل صدق دادن ثواب داره پاداش داره و رسول الله صلی الله علیه و آله تشویق کرده چون داری تو از اون پولی که میتونید استفاده بکنی یک نفر داری داره اون مشکلش حل بشه هموتک رسول الله صلی الله علیه و کسی غمی اندوهی از مؤمنی را کم بکنه الله در صحنه قیامت <متحدث> غماندوش رو کم میکنه فرج عنهم من کربتا من کرب دنیا فرج الله عنه کربا من کرب يوم القيامه و كما قال عليه الصلاه والسلام پس از قبل الان یعقوب علیه السلام اون آمادگی داره که اگر بردن برادرش برادر یوسف رو برنگردونن فعلا ما هم و موثقهم اومدن بس قلا وردن یعنی قسم هاشون حالا ظاهرا این وسیقه بعدم بنویس یعنی تنها به مجرد چون وسیقه وقتی گفتیم میشه که نوشته بشه تنها به مجرد لفظ اکتفا نکرد بنویس که من اینجا قسم می میکنم که برادرم دیگه فردا حرفاتو پس نگیری حالا خصوصا این مسئله تو مسئله ارث و میراث زیاد پیش میاد طرف میگه من این زمینو دارم به این پسرم حالا مرده و دعواس روی سر زمین هیچ هم مدرکی هم ندارن این اشتباس اگر داد پدری به فرزندش باید هم بچهای بقیه راضی باشن هم امضا بكنه که بعد از مرگ دیگه ها دعوا نکنن این وثیقه هست قال الله على ما نقول وكيل اللهم جواهر بر اون تعهدی که داریم میدیم که ما مکری حیله هم نداریم اینجا راست داریم میگیم یعنی قسم میخوریم که ما بس برادرمون محافظت میکنیم و متعهد میشیم که چون اونجا در آیه 63 گفته فرسل معنا اخانه نکتل و انا له لحافظون مازش حفظ میگن اینجا میان قسم یاد میکنن و الله را گواه می گرن بر این برادرشون رو برگردن انشاء الله بعد از آسر ما باقیه آیات رو ادامه خواهیم داد سبحانکه الله بحمده سبحانه الله بحمده صلی اللہ علی محمده و علی محمد